هفتان تا موقعی که مهلق و خانوم از جا در نرفته بود وضع شبنشینی کاملا عادی مینمود خنده بود و رقص موزیک نوارهای رنگارنگ، لبان بوس طلب بوی الکل و دود تنهای مواج و لباسهای زیبا مهمانان پول می‌دادند و یک خرس ماهوتی را به قیمت چند هزار تومان حراج می‌کردند. این شب نشینی های اعیان تهران زیبا و فرهبخش است. اینطور طور مجالس جای اربده و بدمستی نیست. هیچ کس نمی‌گفت مهلقا خانم مست بوده است. اغلب طرفداران شوهرش آقای درستکار معتقد بودند که دیوانه شده است. برخی نیز معتقد بودند که از این دختران خانواده‌های پست که در اثر ازدواج وارد جرگهی بزرگان میشوند نبایستی توقع بیشتری داشت این گونه دختران را میشود به خانه برد اما به مجالس عمومی نباید راهشان داد واقعا هم بیشتر مهمانان تعجب میکردند که چرا آقای درستکار محلقه خانم را به این شب مجلل همراه آورده است بانو محلقه درستکار در لباس دکلته که در شب نشینی باشکوه برتن داشت بسیار زیبا مینمود. البته هر کس که در آن شب نشینی بود و از وضع زندگانی و مقام و حیثیت آقای کار خبر داشت و خانواده مهلقا خانم را می شناخت، به آسانی می توانست حدس بزند که این دختر فقط محض خاطر صورت وجیهش توانست است وارد این طبقه از مردم تهران بشود. در عین حال باید اقرار کرد که مهلقا هم سعی کرده بود تا حدی ادا و اصول مردم طبقه ای که با آنها مشهور شده بود بیاموزد. آرام می خندید و ملایم صحبت می کرد. برای همه کس از در گوشه لب آماده داشت. در عین حال، پشت این نقاب دروغی و در پس این حفاظ مناعت و آرامش، گاهی علا رغم میل و اراده خود، حرکاتی از اوناشی می‌شد که تینت باطنیش را نشان میداد. اگر کسی با نظر بسیر او را، حتی در شب نشینی، هنگام گفتگو با آقای درست کار از ترس حرف زدن، از وضع اتکان دادن دست و از پرش موجها و ابروها میتوانست درک کند که دائما با شوهرش در حال نزاع است و از او بدش میآید البته هیچ رفتاری که بر بی‌ادبی او دلالت کند مشهود نبود مقصود این است که خانم مهلقا عیال زیبای آقای درستگار، آنقدر در این محیط جدید پرورشی یافته بود که بتواند صورت ظاهر را حفظ کند و به شوهرش در حضور دیگران بی احترامی نکند و علنا تنفر خود را ابراز ندارد محلقا خانون و یا به قول آقای درستکار مهیجون معمولاً معمولا نمی رخصید. با وجود این اگر بعضی از مردان تازه کار اهل اینگونه شبنشینی ها برای اینکه به شوهرش تملقی گفته باشند او را به رخص دعوت می کردند جواب رد نمیداد. از این گذشته آنهایی که آقای درستکار را خوب می شناختند و به زندگانی تراژیک او پی برده بودند می درستکار را دوست ندارد و خوشبخت نیست همین نکته را بعضی دلیل می که انسان خوشبخت در دنیا وجود ندارد اگر کسی مانند آقای درست کار، از تمام نعمات زندگی شهرت افتخار احترام جاه و مقام و ثروت و عشق و هنر و استعداد بهرهور باشد می بایستی یک جایش درد بکند و سهش بکشد مختصر اینکه که وضع داخلی خانواده نیز به نفع آقای درستگار تمام میشد. من مدت‌ها بود که آرزو داشتم با این مرد بزرگوار آشنا شوم. زیرا من حس می‌کردم که آشنایی با او وسیله ترقی من خواهد بود. براخره من هم می‌خواستم سری توی سرها بیاورم و دستم را به چای بند کنم. البته مقام او به قدری بالا بود که دست اشخاص نظیر من به آسانی به او نمیرسید روزی نبود که در روزنامه ها شرحی از فعالیت ادبی و اجتماعی آقای درستگار درش نشده باشد. همه روزنامه ها هم طرفتار او نبودند. برخی سخت بر او میتاختند و او را مرد حقباز شالتان بی استعدادی معرفی می که از پشت و تملقگویی و حتی جنایت به آب و نانی رسیده است. اما نوشته های این روزنامه که تأثیر در عظمت و بزرگی او نداشت. براخره نتیجه یکی بود. برای او موافق و مخالف تبلیغ می کردند. یک روز می گفتن که فلان انجمن را افتتا کرده است و یا عضویت حیط مدیره انجمن انجامن دیگری را پذیرفته است. روز دیگر شرح مفصلی از دعوتی که یکی از جمعیت های بین المللی از او کرده بود در مجلات خانده می شد. روز سوم تفصیلات شرفیابی او به حضور شاه و نخست وزیر وقت جلب توجه می کرد. بعد مبلغی که به یکی از موسسات خیریه اعانه پرداخته بود با حروف برجسته در روزنامهها خانده میشد در هر صورت هر روز اسمی از او بود کتاب او را زیاد خوانده بودم مطمئنا اگر صلیقهی من ملاک بود میگفتم که چندان از آثارش خوشم نمیآید به طور یقین سبک او روان عبارت او فسیح مزامین او بلیغ کلماتش برگزیده و به طور کلی مطالب او جالب و زیبا قالب ریزی شده بود. من خود در یکی دو مجله شرحی در تعریف و تمجید او نوشته بودم و حتی نزدیک بود روزی در یک محفل ادبی سخنی چند درباره رموز ادبی او در حضور شخص خودش ایراد کنم. با همه این احوال اگر در محیط دیگری زندگی می کردم شاید هرگز دست به کتاب او نمی زدم. اما نمیشد در این مرگ زندگی کرد و دم از ادب زد و با آثار ادبی او آشنا نبود. هر وقت در روزنامه ها اسمی از آقای درست کار برده میشد، در خانه ما نیز گفتگو از پدر و کسان محلقه به میان می آمد. خانواده های ما با هم از قدیم آشنا بودند. پدر محلقه خانم الافی بود که سر کوچه ما دکان داشت. بعد کارش گرفت و در همان محله ما چندین خانه و دکان و کاروان خرید. و بعد ملک دار شد و خودش هم یک ملک بزرگ در مازندران خرید. مادر بزرگم می توانست تمام شجر نامه محلقا خانم را دوست پشت بگوید. خوب به خاطر دارم که محلقا خانم در بچگی زیاد به خانه ما می و ما با هم بازی می کردیم. یادم هست که وقتی با هم عروس و داماد بازی می کردیم، او همیشه عروس بود و من داماد. اینها را من یادم هست، من جز به محسلین دولتی به فرنگ رفتم و محلقه و پدرش را به کلی فراموش کردم اما مادربزرگم بزرگم از سرنوش پدر محلقه خانم خوب اطلاع داشت می گفت کارش بالا گرفت سفر مکه رفت حاجی شد در مازنده را خرید یک مرتبه سرونیز شد هیچکس نفهمید که چه بر سرش آمد من که این آقای درست کار را هرگز ندیدم قا خوب یادم است، همان وقتش هم با نمک بود، حالا می که خیلی قشنگ شده. در کلیه منشعات آقای درستگار همه جا صحبت از صلح و صفا و پاک دامنی و نیکویی و امانت و دوستی و محبت و تقبا و افت نفس و گذشت و خداشناسی است. در مقالات سیاسی که گاهی به قلم او در مجلات ادبی منتشر می شود و رادیو تهران نیز آنها را منتشر میکند. همه جا در محاسن اتحاد ملی و رفع اختلافات و پیشرفت و ترقی مدیه سرایی می شود. با این مقدمه تصور کنید که وقتی او را شخصا در تالار زیبا و باشکوه کلوپ افسران دیدم که با زن فتان و دلربایی می رقصد، چقدر تعجب کردم. من تصور می کردم که مرد قدی با موهای ژولیده و قد خمیده با عینکی سفید و دورطلایی کتابی به دست مطالعه کنان به عنوان نویسنده فاضل و دانشمند همونطور که در اغلب روزنامه از او اسپورده می به من معرفی خواهند کرد و یا نشانم خواهند داد. و واقعا عکسایی که از او در روزنامه ها منتشر شده بود همین عقیده مرا تایید می کرد. ولی وقتی آقای درستگاه را در کلوب افسران رقص کنند دیدم یک که نخوردم. برعکس علاقم بیشتر شد. بسیار مایل شدم که با او آشنا شوم. تا آن زمان می‌خواستم او را از دور ببینم ولی آن شب واقعاً در خود این گستاخی را دیدم که بهش معرفی شوم. بالاخره من هم اسمو کینگ برتن داشتم و از قیافم ابدا معلوم نبود که پدرم تو سنگلچ پهلوی دکان حاجی الاوف دکه کوچکی داشته است. من هم فرنگ رفته و تحصیل کرده و تربیت شده بودم. چه چیزم از آنها کمتر بود؟ در هر صورت دلم را به دریا زدم. هر وقت در کلوب افسران به عناوین مختلف مثلا شب نشینی به نفع امور خیریه خبری بود می گفتن که آقای درستگار را می شود آنجا پیدا کرد ولی من تصور می کردم که او در گوشه‌ای نشسته و در حال حضار مطالعه می کند. امشب که به مناسبت عزیمت او از ایران به منظور شرکت در یکی از کنگره های ادبی بین المللی شب نشینی ترتیب داده شده بود یقین کردم که سردماغ است و می شود به او آشنا شد و چند دقیقه صحبت کرد آن شب تالار بزرگ و سرسرا و راه تا دم در اهمیت و زیبایی به خصوصی داشت. حتی در پیاده رو معلوم بود که امشب در کلوب خبر فوقلاده است. اوتوموبیل های فراوانی در خیابان در باغ صف کشیده بودند. بچه های لخت با لحاف پاره بدن خود را پوشانده و به کاپوت روپوشدار پوشدار اوتوموبیل ها می تا کمی گرم شوند. اینها هم برای خود عیش و داشتند. و اگر از تهمانده ی شوفرها چیزی به آنها نمیرسید عقلن تنشان که گرم بود. های برقی جلای خیره کننده به این محفل تفریح خصوصی بزرگان و ثروتمندان تهران میداد. خانمها در لباس بلند و دنبال دار بودند و مردها در فراک. شاید یک نفر هم اسموکین بر تن نداشت و تنها من با لباس آریه‌ای خود در آن جمع ناجور می نمودم. همه چیز من هم ناجور بود. اگرام به نظر خودم چنین میآمد. ریختم به آنها نمیآمد. گاهی به خود میگفتم که شاید در پیشانی هم نوشته است که پدرم دکی بقالی داشته است. من در این محفل خود را غریبه میدانستم. آنچه در دانشگاه های اروپا مخته بودم اینجا رواج نداشت. نمیدانستم با این مردم چه بگویم و به نظرم میآمد که لباس آریه به تنم گریه میکند. لباسهای خانومها که در نور های برق به الوان و مختلف هر آن بر حسب موزیکی که نواخته میشد سای روشن نرمی به خود میگرفت اینجا مرکز سلیقه و هنرمندی بود هرکس هر آنچه زیباتر داشت نشان میداد اگر پشت آنها سفید و هموار و جذاب و لطیف بود پارچه آن را نمیپوشانید که از تماشای این همه زیبایی و یک رنگی لذت میبردم به اینها حق می دادم که ماورای دشواری های کوچک زندگانی، بدنهای خود را با آهنگهای آسمانی موسیقی فق دهند و از دریای بیکران شادی سیراب شوند. آه ما چه محیط تنگی داشتیم. سر چه چیزهای کوچک با هم دعوا میکردیم. گاهی سری یک لقمه نان خانواده های ما به جان یکدیگر میافتادند. در مقابل، اینها چقدر بلند نظر بودند به رذر مرا را گرفته بود زیرا یکی از محارمین اجتماع زیر بازوی مرا گرفت و به بار برد و پرسید قشنگ نیست او خیلی قشنگ است عالی است این منظر واقعا زیبا بود و راستی و آقای درستگار حق می دادم که در چنین محیطی اوقات فراغت خود را به سر اینجا صلح و صفا بود اینجا واقعا اتحاد و دوستی و صمیمیت و خداشناسی به معنای طاعت خلق بود اینجا همه خوش بودند در موقعی رقص زنان در حالی که لذت از چشمهای آنها تراوش میکرد های خود را به گونههای مردها چسبانده و از صفای باتن که قلب آنها را روشن میکرده بهره می‌بردند. بدون اینکه کسی کینه ورزد و بخیل باشد و یا اینکه کار به جدال بکشد زنان لازم نبود به شوهران خود دروغ بگویند زیرا هرکس کس واضح و آشکار میدید که زنش از مرد دیگری که با او میرخصید خوشنود است در این مجلس کارهای مهم کشوری رد خواف تحت میشد دشواری هایی که ماها طرفین دعوا سر آن با هم کرنجار رفته بودند گاهی با یک نگاه یک لبخند یک چشمک یک اشوه یک نوازش یا فشار دست حل میشد اینجا از جنایاتی که یکی به ضرر دیگری مرتکب شده بود میگذشتند و دنیا را فدای لذت زمان حال میکردند اینجا همه مست بودند اما کسی اربده نمیکشید اینها زندگی را صهلتر از آن میگرفتند که ما مردمان معمولی با چشمانداز نزدیک خود تصور میکنیم اینجا نظاع نبود اینجا یگانگی برقرار بود. همه از هم بودند. همه منافع یکدیگر را حفظ می و صد شکست ناپذیری در برابر دشمنان طبقه خود می کشیدند. غذای خوب، رنگ زیبا، موسیقی دلنگیز، نوشابه، مکنت، قدرت، عشق. چه فایده داشت که انسان به خود درده سر بدهد و در فکر غم دیگران باشد. من برای اولین بار، در چنین مجلسی حضور یافته بودم موقعی که با محلقا خانون پس از سالها روبرو شدم به طور یقین در نظرش آدمی خجول و بی و و جلوه کردم. شکی ندارم در این که او فوری تشخیص داد که اسمکینگ من گشاد و آریه است بانو درست کار قیافه بسیار ساده و بی معنایی داشت از تمام حرکاتش پیدا بود که او هم اهل این ماهید نیست چون این زنی باید در خانه به ماند و بچه داری کند و به همین دلیل که او را مانند خود در این محیط غریب دیدم بیشتر با او اخت شدم خود را انگل او کردم زیرا من اغلب تنها بودم و حالان که دیگران می‌رخصیدند با قیافه مادرانه به حرفهای من گوش می‌داد به محض اینکه چشمش به من افتاد مرا شناخت دست مرا گرفت و بازوی مرا فشار داد گویی باز داری داماد بازی می‌کنیم از بچهای سنگلش صحبت کردیم از دکان بقالی پدر من، از مادر بزرگم پرسید مدتی با هم از اینجا و آنجا گفتگو کردیم فرصت نمیداد که من چیزی بگویم مانند ماهی که دو مرتبه از روی زمین در آب افتاده باشد میخواست به محیط جدیدش عادت کند از من پرسید که تو اینجا چیکار میکنی؟ گفتم فقط به عشق دیدار شوهر شما اینجا آمدم، هیچ منتظر نبودم که شما را اینجا ببینم محلقا خانم به من تو خطاب میکرد ولی من هنوز تأثیر اسموکینگ آریه را در خود حس میکردم و از همین جهت جرأت نداشتم آنجوری که دلم میخواهد صحبت کنم. من کتب کار را خاندم. دلم میخواست بدانم این کسی که همه آثارش سرشار از درستی و راستی و محبت و صلح و صفاست آدمی است؟ شما باید از زن زنهای دنیا باشید که با یک چنین آدمی زندگی میکنید. محلق خانم ماتش برد گاهی بعضی وقتی نمی دانند چه جواب بدهند می خندند که مرموز جلوه کنند اما خنده محلق و خانم هیچ رمزی نداشت خندهش جلوه از حیرت و سادگی و کودکی بود مثل اینکه میخواست مرا تحقیر کند با یک خنده معمولی به من جواب داد معمولی بدین معنی با این خنده نه مرا مسخره کرد نه حرف مرا تصدیق خواست بکند به هیچ وجه نمیشد گفت که از تعریف و تمجید من خوشش آمده اما دلم میخواست او را به حرف بیاورم چندین زن جوان دور آقای درستگار ایستاده میخندیدند و بلند حرف میزدند گاهی آقای درستگار با یکی از آنها تنگوشی چیزی میگفت آن وقت دستی به تحریش فلفل نمکیش میزد و با چشمهایش پر پرمعنایی میکرد به محض اینکه صدای موسیقی بلند میشد زنها یکی یکی او را ترک می‌گفتند. هر یک از آنها با یکی از آقایان به طرف پیست می‌رفت و چندین کیف چرمی و مخمل و ماف و پوست های آرژانتینی روی دست و شانه‌های آقای درستکار باقی می‌ماند. محله قشنگ بود، اما فروق نداشت. می‌خندید و صحبت می‌کرد، اما تصور می‌کنم که بیشتر از دیدار من خوشحال است تا شرکت در این شب نشینی باشکوه که به افتخار شوهرش داده می‌شود. وقتی من با کس دیگری حرف می زدم، و مفلوک به نظر می آمد. آری، با وجود لباس زیبا و جواهراتش، مفلوک به نظر می آمد. هر کس در اولین وهله می دید که اینجا دنیا نشف و نمای آقای درستگار است. و هیچ ارتباطی ما بین این مرد بشاش و این مچاله بدبختی که در کنار من نشسته نیست.